فصل 26. تا همینجا بیشتر نمیگم میتونم بگم بعد خونه رفتن چیکار کردم و چطور مریض شدم و این حرفها یا اینکه قرار پاییز سال آینده بعد از اینکه از اینجا اومدم بیرون برم کدوم مدرسه ولی حال گفتنشو ندارم باز این حرفو خوشم نمیاد. حوصله سربره. خیلیا مثل همین روانکابه که اینجاست مدام ازم میپرسن وقتی سپتامبر سال بعد برگشتم مدرسه حسابی درس میخونم یا نه. به نظرم سوال احمقانه ای می میپرسن. آخه کی میدونه که چی پیش میاد؟ هیشگی یاونم این کارو بکنم ولی از کجا معلوم؟ به خدا که خیلی سوال مسخریه دیبی مثل بقیه نیست ولی اونم هی سوال پیچن میکنه همین شنبه هفته پیش با دوست انگلیسیش که بازیگر فیلم تازشه اومد دیدنم زن عداعتفاری بود ولی خب خیلی خوشکل بود تا رفت از شوی زنونه اون طرف ساختمون دیبی نظرم و درباره همه این حرفایی که بهت گفتم پرسید خداش نمیدونستم چی بگم راستش خودمم نمیدونم چه نظری دارم خیلی ناراحتم حرف این آدم و زدم د میدونم دلم برای تک تکشون تنگ شده حتی همون استردلیتر رو اکلی یمونم دلم برای اون موریس لنتی هم تنگ شده مسخر است هیچ وقت به کی هیچی نکن هیچ وقت به هیچکس هیچی نگو اگه بگی دیگه گفتی و رهاشون کردی اون وقت دلت براشون تنگ میشه